قریب چهار ماهی به زیارت آقای نواپور که از جوانان منبرال فکر هستند موفق نشدم. بعد شنیدم که ایشان به دیار مغرب مسافرت کرده بودند. از راه روسیه به برلند و لندن و پاریس تیه مراحل نموده و از راه مارسی و بیروت و بغداد به تهران مراجعت فرموده بودند. در زمین بیابان قدس و جامعه بلبک و کلاسه دمشق و کوفه و بیلغان را نیز زیارت کرده بودند پس از بازگشت به تهران دیگر هیچ کس ایشان را نمیدید. همه دوستان تشنه زیارتشان بودند و اغلب معتقد بودند که ایشان مشغول قور و مطالعه بودند و ان قریب کتاب مهمی که در عالم اجتماع ایران انقلاب اخلاقی عظیمی تولید کند انتشار خوان داد. واقعا هم توقع مردم بیجا نبود. چه بیشتر این نویسندگان تمام روز گرفتار هستند و باید برای امرار معاش زحمت بکشند. اما آقای نواپور هیچ احتیاجی به کار کردن نداشتند و شغل عمده ایشان غور و مطالعه در کتب برای بخشیدن آثار مهم به ملت بوده است. گذشته از این با آن زوغ سرشار و ذخیره معلومات و فضایلی که همه در آقای نواپور سراغ داشتند، توقع دیگر داشتن خود خطا بود. اما آنچه آقای نواپور که از جوانان منبر الفکر هستند به منصه ظهور رسانیدند، به درجات بیش از آن بود که عموم از معظم الله توقع داشتند. مردم خیال می که آقای نواپور کتاب قطوری منتشر کرده و با آن در جامعه ایران انقلابی تولید خواهد کرد خبر موفقیت ایشان بیش از انتظار بود آقای نواپور فقط یک مقاله تسبیت فرمودند و همین یک مقاله چنان در جامعه تنین انداز شد که تمام توده را به هیجان انداخت مقاله ایشان در روزنامه اصلاح اجتماعی که مدیر و همکاران آن تماماً از متجددین و منبرل فکران هستند منتشر گردید از آنجا که این جانب بدضعی راقم سور را آن پای و مای نیست که از نهضت‌های علمی و ادبی و اجتماعی مستحضر باشم از خواندن روزنامه نیز بینیاز می باشم. ها مخصوص جوانان منبر فکر و متجددین است. کسانی را که پایه علمی فهم آن، مقالات مهم و آن پاورقی های مهمتر موریس لبلان و میشل است، از آن چه بهره برند؟ به خصوص روزنامه اصلاح اجتماعی که در آن اخبار خارجی که گاهی طرف احتیاج این جانب می باشد به تب نرسیده و تمام ستونهای آن با مقالات اخلاقی و اجتماعی تسوید می گردد. اصلا این روزنامه رهبر جوانان ایران به شمار می رود. قسمت عمده مقالات آن ترجمه از کتب قدیمه است. مختصران که این جانب دستی به روزنامه ها نداشتم. متا روزی به یکی از کتابخانه ها رفتم. در آنجا جمعی از پزلا و ادبا حاضر بودند و صحبت از مقاله آقای نواپور به آمد. آقای فاضل قهستانی و عدیب جوشغانی که هر یک رکن رکین عالم علم و ادب هستند و معلومات معقول و منقول و اطلاعات وافر ایشان در احادیث و اخبار و فقه و اصول و هیئت و نجوم و لغت و تاریخ و انصاب و منطق و حکمت و فلسفه بی نیاز از تعریف و تمجید است به اتفاق جمعی دیگر از متقدمین در آنجا تشریف داشته و هر یک شرح مبسوطی راجب فواید این گونه جوانان و مخصوصاً این گونه مقالات عام‌المنفعه ایراد فرمودند. آقای قهستانی که ارتباط خاصی با هیئت علمیه ایران دارند و مدتی نیز ریاست این مجمع مقدس را عهدهدار بودند بودند، چنین فرمودند: من اصلاً و عبدن و مطلقاً و به بچه من الوجوه نمیخواهم فضایل و کمالات این مؤمن را مورد انتقاد قرار دهم. هاشا و کلا، برعکس وجود همین گونه جوانانت که انسان را به آتیه این ملت و این آب و خاک امیدوار می کند. اونتا این آقایان کمی جوان هستند و گاهی زیاد تند روی می کند. اما اگر قبلا به این بنده رجوع کرده بود، شاید بعضی کمک ها به او میکردم. گذشته از اینکه ایشان بعضی لغات عوامانه در مقاله خود استعمال کردند که بقیده‌ی من از فساحت و بلاغت برکنار است. بعضی از ایرادات دیگر نیز به مقاله ایشان وارد است. مثلا این ماده خیلی تعجب می‌کردم که چرا ایشان به هیچ وجه اسمی از پوستین نیاورده بودند. بالاخره این لباس اجدادی ماست و هنوز هم بسیاری از ما وقتی که به خانه می و زیر کرسی می خوب می دانیم که اگر پوستین نباشد خیلی به ما بد می کسرد آقای عدیب جوشقانی که مقام علمی ایشان مستقنی از توصیف و تعریف است فرمودند فرمایشات حضرت آقا کاملا صحیح است ما به شخص ایشان کاری نداریم ولی مقاله ایشان البته مفید است. منتها ایرادات حضرت عالی نیز بجا و متین است. مطلبی که راجب پوستین فرمودید مخصوصاً بنده تاکید میکنم بنده خودم مثلا نماز را با پیراهن و زیرشلواری میخونم ولی دعای سمات بعد از نماز را اگر پوستین نداشتم نمیتوانستم بخوانم. تصدیق میفرمایید که تمام این مطالب را متقدمین ما در کتب قدیمه به تفصیل شهر دادن ولی همانطور طور که پرمودید جوانان خوب است که گاهی به این کتب قدیمه نیز مراجعه کند هزارات آقایان راجب این مطلب زیاد مذاکره فرمودند اما بیشتر آن به زبانی بود که این عبد ضعیف راقم و سطور را قبه فهم و آن نبود مثلا یکی از آقایان دایما در وسط کلام جملاتی به زبان عربی تکلم می‌فرمودند و از فسخ و رسخ و مسخ و نسخ سخن می‌رانند که برای بنده زبان اجنبی بود این عبد ضعیف حاجت و مراد و مطلب و مدعا و مقصد و اعتقاد آقایان را اینطور فهمیدم که همه آنها از مقاله آقای نواپور که از جوانان منبرول الفکر و متجدد هستند، محزوز بودند. فقط ایراد اساسیشان این بود که چرا این جوان به کتب قدیمه مراجعه نکرده است. شب همان روز در منزل آقای رادبان که از نویسندگان درجه اول ایران هستند، خدمت جماعتی از ادبا رسیدم. تذکران عرض می کنم که خانندگان عزیز من تصور نفرمایند که این بنده حقیر با فوزدلا و ادبا و نویسندگان معاشر هستم خیر این بنده آن شب به این منظور خدمت آقای رادبان رسیده بودم که از ایشان استدعا نمایم توصیهی به رئیس اداره این بنده کرده و اقدامی بفرمایند که شاید اضافه حقوقی برای اول سال درباره این جانب منظور گردیده و یا اقلن مرا به دایره دیگر انتقال بدهند. آقای رادبان دارای آثار بیشماری در ادبیات و تدقیقات و تتبعات تاریخی بوده و چندین مرتبه تا در مجالس عمومی ندخ‌های عام‌المنفعه‌ای ایراد کرده و به طور یقین یکی از نوابق و متفکرین این دوره به شمار میروند. ایشان به کلی مخالف تمدن سامی و عربی و آثار دوره بوده و معتقدند که مملکت ایران که مهد نژاد آریایی است باید خود را از لوس تمدن عرب خلاص کرده و خوی نیاکان و پیشینیان را پیشگیرد. گیرد عقاید این جوانمرد در توده منبر فکر ایران تأثیر عظیمی کرده و باید اقرار کرد که در اثر سعی و کوشش آقای رادبان طرفداران این عقیده بزرگترین نهضت اجتماعی ایران را تشکیل میدند اتفاقا در منزل این بزرگوار نیز صحبت از مقاله آقای نواپور به میان آمد تعریف و تمجید بود که از اطراف به معلف محترمان حوالت می شد. مخصوصا یکی از جوانان که تازه داخل جرگه نویسندگان شده است چنین گفت. ما آریایی هستیم. ایران میهن گرامی ماست. به ویژه آشکار است که شارستان ما به شارستان اروپایی نزدیکتر از شارستان تازی است. ما باید در همه چیز از اروپایی های پیروی نجاد کنیم. از این شوه با نگاریده شط نواپور که از پیشگاهشان بزرگی اندوز نشده هم همراهم هم. یکی دیگر از نویسندگان کتاب حال چندین مجله تأسیس کرده است و در هر کدام از آنها طرفدار یک عقیده به خصوصی بوده است چنین فرمودند از این لحاظ بنده هم با مقاله آقای نواپور موافقت کامل دارم و شاید تا به حال مقاله‌ای تا این درجه عام‌المنفعه در ایران انتشار نیافته باشد ولی من نمیدانم که چرا ایشان آنقدر لغات غیر مستره عربی استعمال کردند خیلی از لغات را میتوانستند به پارسی سره نوشته باشند مقصود از پارسی سره اگر خدایی نکرده بعضی از خوانندگان نفهمند گمان میکنم همین فارسی است که آقای محترم بدان تکلم میفرمودند. غریب دو ساعت راجب مقاله آقای نواپور در آن مجلس صحبت شد و من واقعاً میل کردم که این روزنامه مهم را پیدا کرده پیش یکی از آقایانی که این مطالب را میفهمند رفته و به کمک او این روزنامه را بعد بدبختانه دو روز از انتشار این مقاله گذشت و این عبد زعیف راق ما ستور به کلیان را فراموش کردم اتفاقاً شب پای وعز شیخ محلمان رفته بودم و آنجا معظم راجب مقاله آقای نواپور و فرمودند. ما تحصف به لحاظ حقیر در فاصلی بعیدی از منبر آقا شیخ قعود کرده بودم و تمام مفاوزات معزیون اله را تابق و نال استماع نمی کردم موفق به درک مطالب آلیه ایشان نگردیدم. یعنی فهم این مطلب برای حقیر میسر نشد که بالاخره آقا و من منطب ایشان با این مقاله و نویسنده یا آن موافق هستند و یا مخالف. گویا آقا به نعل و به میخ میزدند. ظاهرا چون به اهمیت مقاله و نفوذ آن در جامعه پی برده بودند نمیخواستند با آن مخالفت کنند و از این راه ادعی از طرفداران خود را بتارانند. مثلا اگرچه در ضمن اشاراتی بعدم ثبات دنیای دون و لزوم بی اعتنایی به لباس که امری است آرزی و وجوب صرف عمر در اصلاح نماز و روزه و تقوا و ترس از خدا میفرمودند و تجمل در لباس و ظاهر را یکی از اسباب و علل تبختر و تجبر و دوری از خدا میدانستند و میگفتند آن صوفی ملحد که لای سی فی سوی الله میگفت که و قوایتش از غایت زیبایی جبه بود و به شعر استاد سخن سعدی استشهاد مینمودند که فرموده است مردی که هیچ جامعه ندارد به اتفاق به طرز جامعه‌ای که در او هیچ مرد نیست، معاا از نویسنده جوان و فاضل و منور فکر مقاله تمجید و تحسین مالا کلام مینمودند و عقاید او را قابل قور و خوز تشخیص میدادند. سپس تصمیم گرفتم که حتما و به هر نحوی هست این مقاله را به دست آورده و از محتویات آن به کمک یک نفر مرد دانشمند مستفیض کردم اما این روزنامه دیگر تا نسخه آخرش فروخته شده بود مخصوصاً خدمت آقای مدیران رفتم ایشان فرمودند که این دفعه مخصوصاً از لحاظ اهمیت مقالی آقای نواپور 300 نسخه چاپ کرده بودیم معhazاً همه آن به فروش رفته و دیگر یک نسخه هم موجود نیست چندی گذشت و همه جا در صدت بودم که این مقاله را یافته و بخوانم. چند روز پیش بی هوا به یکی از مغازه‌های های رفتم که پارچه برای پالتو بخرم. از صاحب مغازه پرسیدم، پارچه های تازه چه دارید؟ در جواب گفت، مگر شما مقاله آقای نواپور را در روزنامه اصلاح اجتماعی نخوانده اید؟ این مقاله به قدری مهم بود که تجدید تب شده است، پارچه برای پالتو بهتر از پارچه‌هایی که ما می‌آوریم وجود ندارد. به خود آقای نواپور هم یک پالتو از آن تقدیم کرده‌ایم. در سر قیمت آن مدتی با هم گفتگو کردیم. بعد صد قسم خورد که از قیمت مایه کاری هم برای خاطر من که مشتری عزیز او هستم، مبلغی ضرر می‌کند. 3 سه نیم پارچه خریدم و در ضمن صاحب مغازه یک نسخه از یک دسته روزنامه که آنجا بود مجانن به من داد. دست با چه رفتم به خانه و قبل از آن که پارچه پالتو را معاینه کنم، اول آمدم که این مقاله مهم را که این همه در جستجوی آن بودم بخوانم. در حقیقت از به دست آوردن روزنامه بیش از ابتیاع پارچه مشعوف بودم. ولی از شما چه پنهان؟ مقاله محتوی همان مطالبی بود که برای من قبلا گفته بود و رفیقم از راه تمسخر او را تشویق کرده بود که آنها را چاپ کند. اما در روزنامه علامتی که دلیل تجدید آن باشد ندیدم اما زیر مقاله اعلانی از صاحب همان مقاسه که پارچه را کمتر از قیمت مایه کاری به من فروخته بود دیدم البته این عبد ضعیف راغم سطور آنقدر سوء زن نسبت به مردم ندارم که خیال کنم جوان خانواد دار و با کمال مانند آقای نواپور که از جوانان منور الفکر هستند از مرد متمولی که به سر حضرت موسی قسم که پارچه را کمتر از قیمت مایه کاری به من فروخته بود برای تحریر این مقاله مهم پیشکشی دریافت داشته بودند